مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست که به پیمان کشی شهره شدم روز عله است من هماندم که وضوع ساختم از چشمه عشق چهار تکبیر زدم یک بر هرچی که هست می بده تا دهمت آگهی از سر غذا که به روی که شدم آشق و از بوی که مست کمر کوه کم است از کمر مور اینجا ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست به جزان نرگس مستانه که چشمش مرساد زیر این تارم فیروزه کسی خوش ننشست جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمنا جهان خوشتر از این غنچه نبست حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد یعنی از وصل تو نیست به جز باد به